شدن موی پیامبر در دوبه صحت دارد که خریداری شده 100 میلیون دلار عجب 100 میلیون دلار داده اند که موهای نبی کریمو خریدن اینو من هم دیدم اما اول سوال اینه که آیا موهای نبی کریم اینقدر دراز بودن؟ اندازه نیم متر موها درازی موها هستند. موی گرامی نبی مکرم سلام صلی الله علیه و سلم دراز بودند تاکو تا شانه بودن و خیلی کن تا شانه می رسیدن گاهی تا شانه می رسید عموما موها رو از نرمگوش قتل می کردن موها رو از نرمگوش گوش می کردن گاهی در سفر که قذبه بود جهاد بود فرصت نمی شود. اون وقت موها تا شانه ها می رسیده. اما این موهایی که آوردن نشان داره می ده از موهای خانومهای بلند مو. نده آنومی. من خانوی خیلی موهایش درازه به اون اندازه رسیده ان. این محل تعمل هستین. علا صد میلون دلار داده و داد مفت هست داره میدن. اما ایا تستیق کردنش تستیق بکنی تکذیب بکنیم تستیق کردن و تکذیب کردن هر دوتای نیست. ند تصدیق میشه که قطع این هم روی نبی کریمه هیچ کس نمیدونه و نه تکذیب میشه که اینها روی نبی کریم نیستند شاید باشن اما ظاهر امر تصدیق نمیشه ظاهر امر قبول نمیکنه احادیث به این صورت اومدیه موها اینجا رسیدند این دارن پخش میکنن خیلی گستر داره پخش میشه و حالا که هر ها موها اینقدر نبودن تمام شمائل تمام کتابهای حدیث الان نگاه بکنید تا اینجا آمده بیشتر از نبی ثابت نیز پس نتستیغ می کنیم نتقذیب می کنیم اما موهای نبی کریم صلی الله علیہ وسلم تقسیم شدن موهای نبی مکررزن در صحاب اکران تقسیم شدن داخل صحیح بخاری صحیح مسلم احادیث صحیح داریم در حجت الوداع وقتی حضرت ابو طلحہ رضی الله تعالی عنہو نبی مکرر بسلام صلی اللہ علیہ وسلم را از احرام بیرون کردن و سر مبارک نبی کری را تراشیده به ماه تراشیدن یک موژ از مهاجر داخل جیب خودش گذاشت خب اینها معلما اینها رو من به کسی ندیدم صحابه کرا حجوم آوردن برای گرفتن موها چون که وقتی آب داخل صحیح وب بخاری در کتاب و شروط در کتاب و شروط اونجا حدیث طولانی آورده طولانی حدیثی آورده در صلح حدیبیه وقتی که نبی مکرم اسلام صلی اگر آب میانداختن آب دہن نبی مکرم زمین نمیافتاد در دست صحابہ کرام میافتادن اگر آب دیدر میانداختن زمین نمیافتاد صحابہ کرام اگر وضو میفرمودن آب وضو نبی کہ زمین نمیافتاد صحابہ کرام میگرفتہ روی خودشا میمالیدن این تبرکات نبوی را به کسی اینها رو همین بود که وقتی که اون قاصد قریش این داستانو دید، گفتن که من به قریش گفت. گفت من قاصد بودن در امپراتوری های بزرگ رفتم، پیش کسرا رفتم، پیش قیصر رفتم، پیش مقوقس میسر رفتم. اما هیچ کسی رو به این صورت وفادار من ندیدم که حتی آبدهن رو زمین نگفته، با این شخص ما نمیتونی که در بیافتیده. پس رأی خودتون تغییر بدید حالا موی نبی کری هرگه روز زمین نمی افتاد ابو طلحه رضی الله تعالی موها رو گرفت داخل جیبش گذاشتین هارو صحابه اومدن باقی باقیمانده موها رو تقسیم کرد بین صحابه تقسیم شدند داخل صحیح بخاری کتاب الوضو هم آمده و جاہ دیگر صحیح بخاری آمده مقدار از موها پیش حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین بودن هر کسی بیمار میشد موهای نبی کریم داخل آب میشوستن بیمار میخور شفا حاصل میکرد این هم داخل کتاب الوزوی صحیح بخاری این حدیث اومده پس موها بودن حضرت انس هم از این موها داشته صحابه کرم موهای نبی و داشتن و این مودی خیلی داره کرامت هست داره شرافت بوی نبی کریمه آزه نبی که به تمام چیز دارای کرامت خاصی هم در غزوه اهود وقتی نبی مکرم اسلام زخمی شد و خون وقتی که جاری شد حضرت ابو سنان پدر ابو سعید خودری رضی الله تعالی وقتی که دید داره خون داره میریزه فورا نبی کریم که و که خونه ها خورد و این خون نه از زمین بریزه نبی مکرم اسلام فرمودند که کسی در بدنش خون من باشه جهنم نمیریم و حتی حدیث دیگر هم هست که نبی مکرم اسلام داخل خونه یک تخت داشتند وقت تخت رو ایف شوی قضا حاجت پیش و همون آب را زیر تخت گذاشتن به کنیز گفتن که آبها را بیرون بریز این کنیز وقتی اونجا بی که اونجا بیرون خورد فکر آب گفتی گفت چکایی که گفت بیگه تا آخر اون به مریضی درد شکم مبتلا نشدی حضرت آیشه رضی الله تعالی نها حدیث دیگر داریم که در معارف و سنن شرح کتاب سنن ترمیزی حدیث اونجا روایت رو آورده از حضرت آیش صدیق رضی الله تعالی آنها میگه وقتی نبی مکرم اسلام از دستشوی بی من فورا وارد میشدن که نگاه کنن گیدن فقط یه بوی بسیار خوش اینجا هست هیچ چیزی نیست اینجا گفتن که یا رسول الله من پشت سر میرن چیزی نمیبینن فرمودن که الله رب العالمین اون فضلات انبیار رو فورا زبیب میخورد و کسی اونها رو نمیبیند پس موهای نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم تقسیم شدن اینها به این صورت وجود داشتن تا اینکه این کل تبرکات نبوی آستای نبی مکرم اسلام لباس نبی مکرم اسلام امامی نبی مکرم اسلام سالها سال در زمان در مدینه منوره بعد مصر بود اینها تا امپراتوری عثمانی تا اینکه امپراتوری اس وقتی که به ترکیه منتقل شده حاکم وقت تمام تبرکات نبوی را آوردن داخل ترکیه داخل ایک اتاقی گذاشتن و اون اتاق را کلن منور کرد مؤثر کرد زیبا کرد و حفاظی را اونجا گذاشت حفاظی را اونجا گذاشت که باید 24 ساعت در این اتاق قرآن خونده بشه. تا 400 سال تا 400 سال 24 ساعت در اون اتاق قرآن خونده میشه حفاظ شیفتی بیخوندن تا اینکه آثار ترک عامه این تاثیر که حالا دوباره شروع شده دوباره باز داره در متا آرام می که تنها حاکم وقت ترکیه امپراتور عثمانی این اوتا خودش باز میکرد و خودش تنها او را نظافت میگه هیچ کس دخل برای نظافت نمیگذاشت یک پادشاهی بسیار متقی و پرهیزگار 400 سال به این صورت در خود برکات نبوی این چیز بوده حالا اینکه این موها هستند نیستند همون گذینه که موها رشد کردن دارین واقعیت را کمی دور میکنه از واقع فاصله میگیرن. بیار حال نه تصدیق میکنین نه تکذیم میکنین. اگر تصدیق میکنین شاید نباشه تکذیب کنیم، شاید باشه والله اعلا. پس چیزی بیشتر هم نیست. اما این دوری که دارن که این رو مشهور میکنن این صورت هم نیستیم.